سلام من حسام حداد حد هستم. قسمت سوم پادکست پcastامژن با عنوان برنامه نویسی بدون کد یک توهم یا واقعیت رو میشنوید. در پادکست اوژن در مورد برنامه نویسی هوش مصنوعی و کللا تکنولوژی صحبت می تو پادکست طبیعتاً به دنبال این نیستیم و امکانش هم وجود نداره که یه چیز رو کامل منتقل کنیم اما یک سری ترند و موضوعات رو به صورت خلاصه و اینکه کجا دست کم یا دست بالا گرفته میشن رو با هم مرور کنیم و باعث خوشحالی اگه دیدی بده که بشه ادامش رو کامل دنبال کرد و اطلاع از آخرین اخبار پادکست یا اخبار مرتبط بتونین یوزرنیم ویژن بلک رو توی توییتر اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و دریافت قسمت های دیگر پاتکست رو هم میتونید توی اپلیکیشن های پاتکست مثال کست باکس اسم دموژن به فارسی رو و بدون فاصله سرچ کنید. اگه مطالب مرتبطی با پاتکست هم دارید به همین اصابه کاربری یا به عنوان یک نظر زیر پست ویبلاک بگید. خیلی باعث خوشحالیه. این قسمت پاتکست دو تغییر در جهت بهتر شدن برداشتیم. اولی ترایل لوگوی پادکست بود که احمد عزیز زحمتش رو کشید و دومی هم صدای اینترو یا مقدمه پادکست هستش که یاسا جان زحمت ساختش رو کشیدن جفتشون خیلی دقیق و در راستای حوییت بخشیدن به پادکست هست. اینترو رو داشته باشیم و بعدش به شروع این قسمت پادکست برسیم. اسمت پادکست در مورد برنامه نویسی بدون کد هستش. احتمالا همه حدی با محیط های که کار برنامه نویسی رو به صورت گرافیکی ساده می کنن آشنا باشید یکی از نرمهای قدیمی که شاید اسمش به گوشتون خورده باشه در این زمینه متیمدییا بیلدر هستش. تو این برنامه آیتمی که اضافه می کردید میتونه خودش یه اسکریپتی هم داشته باشه. یه چوب جادویی آیکن چوب جادویی وجود داشت که، میتونست با شما اسکرریپ رو بنویسه روی اکشن های یا آیت میرفتید ردید می بگید توستید بگیید آیتم های دیگه از صفحه حذف بشه یا صفحه ای دیگه لانچ بشه میشد کارای رو به این ترتیب اتوماتیک کرد ولی برای کارای پیشیدهتر نیازمند کد زدن بود برای مثال یک نرم افزار پیتری پ هم با این برنامه نوشته شده بود دیگه نوشتن چه این برنامه بدون کد شبه شوخی هستش دیگه اما توی بازه زمانی بزرگتر اگه نگاه کنیم حجم و پیچیدگی کد هایی که باید برای اینطور برنامه های پیچیده نوشته میشد در حال تغییره کتاب سطح بالاتری سطح بالاتریم به وجود اومدن که این کارو تسهیل کنن به طور کلی تو این قسمت خواین بررسی کنیم ببینیم چقدر میشه بدون کد زدن یا با حداقل کد برنامه نویسی کرد اهمیت این مسئله از این جهت هستش که اکثریت مشاغل به نوعی مرتبط با کامپیوتر شده و داره میشه خوبه که همه افراد بتونن توی سطوب بالاتری با کامپیوتر کار کنن و بتونن با برنامه نویسی کارهایی که دارن رو سریعتر و بهتر پیش ببرن. همچنین اگه نویس ها کسایی که میخوان سرویس وبسایت یا اپلیکیشن خودشون رو تولید کنن، خوبه که اطلاع نسبی از اون این سادته کننده ها داشته باشن تا بتونن تصمیم درست بگیرن و گرفتار پیچیده کردن مسئله وقتی که واسهشون ارزش جدیدی نمی‌سازه نشن. خب از اهمیت موضوع بگذریم، برنامه نویسی بدون ک توی آموزش جایگاه خوبی به خودش گرفته. آموزش برنامه نویسی برای کودکان و نوجوانان یه موضوعی هست که به طور جدی در مقاطع تحصیلی مختلف بسیاری از کشورها انجام میشه. معمولا این آموزش ها اینطوری هستند که تعدادی بلوک برای عملیه مختلف در اختیار دانش آموزان قرار میگیره به مثال یه بلوک برای شرط گذاشتن دارید یه بلوک برای یک روختاد مثل کلیک کردن روی یک آیتم داری یه تعداد زیادی هم انیمیشن وجود داره میشه مثلا یه برنامه نوش که با کلیک کردن روی آیتم آیتم دیگهایی در صفحه اگه نمایش داده میشه مخفی بشه و اگه مخفی است نمایش داده بشه. بیشتر این برنامه سرفن برای آموزش ساخته شدن که کودکان بتونن با مفاهیم موجود در برنامه نویسی آشنا بشن. نمیشه از این برنامه انتظار داشت چیز پیچیده مثل یک بازی رو به مثال تولید کنه. من یعنی این که در واقع برای تولید یک نوع بازی به خصوص کد های آماده شده ای از پیش داشته باشن شما بتوید همون بازی رو تولید کنید یک نمونه از این سرویس ها سرویس کد هستش که برادران پارتوی که ایرانی و اصل هستند توی آمریکا شروعش کردن به صورت خیلی جدی داره توی مدارس کارش دنبال میشه و آدم های مشهوری مثل اوباما و شکیرا که خواننده استش به صورت تبلیغ تور اومدن از سرویسشون استفاده کردن سایتشون هم یک خودآموز داره برای بچه‌ها ولی متاسفانه تنها به صورت انگلیسی هستش و بچه‌هایی که تو ایران هستن نمیتونن ازش استفاده کنن خب جدا از بحث آموزشی بودن برنامه‌نویسی بدون کد نمود دیگه که میشه از برنامه‌نویسی بدون کد پیدا کرد نرم افزار اکسس از مجموعه آفیس مایکروسافت هست توی نرم افزار اکسس یک بخشی به اسم فرمز وجود داره که شما میتونید دیتابیس و جداول مورد نیاز برنامه‌تون رو بدون کد بسازید و فرم‌های ویندوزی برای درج، حذف اطلاعات، توش ایجاد کنید. همچنین یک سری هایی رو هم میتونید بگیرید. برای مثال میشه اطلاعات پرسنلی رو اونجا نگهداری کرد. میشه یک برنامه‌ای بنویش که اطلاعات پرسنلی رو اونجا نگه داشت. یک سیستم انتخاب باید خیلی مینیمال ساخت. چرا میگم مینیمال چون کار کردن روی شبکه و روی اینترنت رو احتمالاً پشتیبانی نمیکنه و فقط یه اپراتور میتونه باهاش کار کنه. اما برای ساخت یک چیز اولیه برای سازماندهی خوبه. ممکنه شرکت یا سازمانی میخواد یه چیز روتین بسازه و این حجم از امکانات هم واسش کافی باشه. یه مورد دیگه که بهش برخوردم و در ادبیات ما جا میگیره موسبه تابه بازگشتی و همگرا در اکسل بود برای یک پروژه عمرانی نرم افزار های دیگه‌ای مثل اکسل هم با فرمول نویسی و بدون کد نویسی میشه ازشون میشه ازشون برای ثبت اطلاعات و دریافت گزارش استفاده کرد مسئله‌ای که وجود داشت یه تابه همگرا در کاربردهای مهندسی عمران بود که میخواستند در اکسل پیاده سازیش کنند احتمالا کسی که برنامه نویسی بلده اولین چیزی که به ذهنش میرسه یک حلقه است که تا وقتی جواب نهایی با دقت مشخصی به دست نیومده ادم پیدا کن. ولی در محیط اکسل اینجوری برخورد کردم با قضیه و ماژول اکتیو X نوشتم واسه یه جورایی هستش. یعنی داریم اضافه کاری میکنیم. با فرمول نویسی اکسل میشه تا بنوشت که ایکس رو از خونه بالاتری از خودش بگیره و اف رو در این خونه خروجی بده. بعدش اگه این تاور رو توی این ستون تکرار کنیم و تا جای خوبی پیش بریم میتونیم به جواب همگرا شده برسیم. اگه سخت نباشیم این واقعا یک حالتی از برنامه نویسی هستش. این ابزار که حالا اینجا اکسل باشه به ما امکانی رو داده که توابع رو به صورت نسبی بین سلول ها تعریف کنیم و تکرار رو هم به این صورت حالا کشیدن و ادامه دادن ایجاد کنیم. تا بشه خیلی ساده و سری جواب نهایی که میخوایم به دست بیاریم رو به دست بیاریم. این رو میشه یک مثال از برنامه نویسی بدون کددانم برد. مسئله وجود داشته میخواستیم به جوابی برسیم. این جواب رو می و برنامه نویسی کرد ولی این رو بدون برنامه نویسی حل کرد. شاید بعد نباشه اینجا نگاهیم به فلسفه یونیکس داشته باشیم که اگر از لحاظ تاریخ می بخوایم نگاه کنیم ایده پشت تامین کتابگونا برنامه نویسی سطح امروزی هستش. ایده یونیکس این بود که برنامه های ساده، کوتاه، شفاف و ماژولار ها بنویسیم که بتونن با هم دیگه کار کنن. در نصی شما با ترکیب این برنامه ها یا همون ماجول ها میتونید یک برنامه پیچیده تولید کنید. با ترکیب چند دستور میشه در یک خط یه برنامه نویشی که به مثال بره به صورت رندوم یکی از اشعار حافظ رو از سایت گنجور بگیره و بهتون نشون بده. اگه واقعا قرار بود این برنامه از صفر نوشته بشه شما باید ضمن اطلاع از نحوه کار کردن اینترنت یه برنامه بسازید که اول از همه DNS مثلا آی پی به DNS ریکوست بذاره آی پی سایت گنجور رو به دست بیاره بعدش این آی پی رو بگیره باش هاندشیک یا عملیات دست دادن که در HTTP هستش رو انجام بده بعدش بهش درخواست اون صفحه مورد نظر رو بده خروجیش رو بگیره بخشای از خروجیش که شیر هست رو بهتون نمایش بده یه جوری باید دوباره HTMLش هم پارسینگ کرد دیگه تمام این کارا رو حتی در هزار خط کد هم نمیشه انجام داد اما ترکیب چند برنامه یونیکس به ما اجازه رو میده که توی لینوکس یا مک از ساختار یونیکس پیروی میکنن این کار رو بدون اینکه خودمون رو درگیر نوشتن و رفع خطای اون نرم افزار هزاران خطی کنیم توی یه خط به تنهایی انجامش بدیم این فرایند که بهش اسکریپت نویسی میگن به نوعی خودش رو توی زبون های برنامه نویسی بالاتری سطح بالاتری مثل پایتون هم جا داده. علاوه بر این که نوشتن و رفع خطا رو ساده تر میکنه خیلی اوقات این کتابون های سطح بالا API هاش یا فارسیش میشه رابط برنامه نویسی هاشون اینجوریه که توی سی پلاس پلاس و جواب پیادستازی شده. و در موقع اجرا سریعتر هم میشه یعنی اگه شما میخواین برای یادگیری خودتون یه برنامه ضرب ماتریس رو بنویسید خیلی هم حالا عالی و خوب و کاری به اون کارش نداریم ولی قطعا استفاده از کتابخونه ای مثل نامپای خیلی این رو سریتر از کدی که شما زدید میکنه تو بنچمارک برای مثال اگه میخوام عددی بگیم که دستتون باشه پیاده کردن ضرب ماتریس تو پایتون میشد 18 ثانیه و استفاده از نامپایش میشد 3 ثانیه حالا کار نداریم که در واقع ابعاد ماتریس چقدر هست که همچین عددی به دست میاد ولی خب روی کامپیوتر با یه ماتریس در واقع یکسان همچین اختلاف هایی رو میشه گرفت یعنی یک شصتم شده زمانش را نه تنها سرعت کدنویسی شما بهتر شده بلکه سرعت اجرای کد شما هم بهتر شده معمولا همچین چیزی رو توی مهندسی در واقع توی علومی که واوست مهندسی هم انتظار نداریم اکثرا یه ترید آفی داریم که مثلا راحتی باعث کندی میشه. اما اینجا می بینیم به خاطر پیازتازی مالتی ترد و توی زبان‌های نزدیک تر به سیستم هم راحت تر شده استفاده از این قضیه و هم سری تر. یه نرم افزار یا بهتره بگیم محیط توسعه نرم افسار هم خوبه اینجا ازش نام ببریم و کار کردش رو با هم بررسی کنیم. واقعیتش الان به اندازه جدی نیست که توی بخش بعدی و توی ترندی که داریم بررسی میکنیم بیاریم اما یه نیم نگاهی هم بهش داشته باشیم بد نیست اسم این محیط توسعه PWCT یا Programming Without Coding Technology PWCT یه سیستمی هست که به شما توانایی تولید یک برنامه دستاب ویندوز رو بدون کدنویسی نویسی میده این صورت که تعداد زیادی از تعاب رولیست کرده و شما میتونید روی هر دگمهی که با درگند راپ ایجادش کردید تعدادی از اکشن ها رو به ترتیب مشخص کنید که انجام بشه یه چیزی مثل اون نرم افزار اوتوران ساز ملتی بیلدر که توی اول پادکست با هم بررسیش کردیم اما از اون جدیتر این پلتفرم که خودش هم مطباز و نه مفصار آزاد هستش یه جورایی استانداردی واسه این غذای شده. دوتا زبان برنانویسی هم باش سازگار هستن اولی اسمش سوپر هست سینتکسش خیلی حیجان انگیز و نزدیک به زبان انسان است. برای مثال میشه گفت تو این زبان میشه گفت که I want window and the window title is demo version podcast یک ویندو یا پنجره می سازه که عنوانش دمو ورژن پادکست هستش یکی دیگه از زبانایی که با پی سی تی سازگار هست اسمش رینگ هست و خیلی جالبه که تو توضیحاتشون آوردن که ID یعنی محیط توسعه ای که باسش هست رو هم با خود این زبان نوشتن همچنین میگن که کتابخونه های این زبان مثل گیم انجین ها یا حالا موتور های بازی که با همراه این زبان میاد رو هم با خود این زبون نوشتن. این زبون سینتکس های نزدیک به زبان انسان و نتاف پذیر داره که میشه هم توی یادگیری استفاده بشه هم واسه پرکسشن آماده تره. البته زبانش حد مورد قبلی مثل سوپر نوانی که یه جمله بگید و دیگه همه چیز ردیف بشه باز یه اصولی از قضیه رو طرفات درک کرده باشه یعنی یه جورایی داره کد می بیسه. ولی در مقابل اون واسه پروداشن، آماده تره یعنی اون قضیه رو داریم میبینیم دیگه انگار داره سختتر میشه کد زدن توش ولی اوکی تره کارای بهتر میشه باشی بازم میگم اعتمالا باید چالش‌هایی داشته باشن اینا وسط کارهای پیچیده به مشکل بخورن اما تعداد زیادی از برنامه‌ها کارهای پیچیده واقعا نمیخوان انجام بدن میتونن این رو هم در نظر بگیرن یه چکی کنن وضعیت آپدیت‌هاش هم نگاه می‌کردم خوب بود و به نظر میسه همچنین تیمی که پشتش هستن دارن به توسرش ادامه میده. خب اینجا نقطه پایان مقدمه رو بگذاریم و به بخشهای بعدی برسیم. این بخش میخواییم راجب برنامه نویسی بکند صحبت کنیم چون داریم به ساده کردن برنامه نویسی کلن صحبت میکنیم و مخاطب آمه اینجا این مفهوم رو سعی میکنیم با هم مرور کنیم برنامه نویسی بکند و فرانتند یه نوع تفکیه که مفهومی بخشای مختلف سیستم نرمخصاریه شاید قبلا وقتی قرار بود یه برنامه فورترند واسه گیشه بلیط یه در واقع یا مثلا مطبب یه دکتر نوشته بشه این تفیق خیلی معنی نمیداد ولی خب الان دیگه اکثر برنامه ها به اون صورت نیست بخش وکنند نرم افزار به بیان ساده میشه بخشی که در پس زمینه داره کارش رو انجام میده یه جورایی هسته قضیه هست اون منطقی که در حالت کلی از برنامه سراغ داریم اونجا پیستازی شده به جز این بخش ما بخش فراننت رو داریم که خروجی و در واقع رخ کار است یعنی تلاش معمولاً روی اینه که منطقه و هسته برنامه توی بکند باشن و تو بخش فرانتند کود هایی که برای ساخت ظاهر استفاده میشه در واقع وجود داشته باشه. و این کدها ها ارتباط با بکند رو شکل بده. پس چی شد؟ بکند میشه قسمت های اصلی برنامه مثل ارتباط با پایگاه داده و اینا. فرانتند میشه ظاهر و روخ قضیه هرشن توی فرانت هم بسته به شایعت ممکنه کدای پیشیده ای لازم باشه که بتونه در واقع اون امکاناتی که می‌خوایم رو پشتیبانی کنه. خب حالا بکند یا اون پشت سیستم رو هم آیا میتونیم بدون کد بسازیم؟ خب جواب نادریقش میشه بله. دقیق‌تر بخوایم بگیم میشه بستگی داره. دو تا سرویس وجود دارم به اسم فایر بیس و آمازون آمپلیفای. اینا میان در واقع مختلف سیستم نرم افزاری مثل استوریج حالا پوش نوتیفیکیشن و مثلا اتنتیکیشن و در واقع این امکانات رو واسه شما بدون کد فراهم میکنن بدون نیاز به نوشتن کد و این صورت که شما وارد رو میشید، پروژتون رو انتخاب میکنید، میگید لاگین کاربر میخوام، به مثال فورگت پاسورد میخوام، به ذر کاربری میخوام این اطلاعات پر بشه، فیلدهای جدولش رو میگین، مثلا میخوام بتونه عکس ارسال کنه، عکس پروفایل، تحلیل روی استفاده کاربرها میخوام و غیره. و اون میره این رو واساتون میسازه با پشتیبانی خیلی خفن و تقریبا میشه گفت بدون قطعی. و باستش فرقی نمیکنه تا کاربر داشته باشید یا پنج میلیون کاربر از همون اول میتونید خیلی سری و ساده با یه استانداردی بسازید که در ادامه در موقع اسکیل شدن در واقع استفاده از نرم افسار تو اون به یه چالشی نخورید الان حواسمون هست دیگه داریم راجع اون هسته و کره از این صحبت میکنیم خروجی این ابزارها و سرویس ها طبق اون تعریف بکند و فرانتندی که گفتیم نمیتونه دست کاربر نهایی برسه. ولی خب جایگزین این قضیه چی بود؟ چی رو راحت کرد؟ جایگزین این قضیه این بود که یه سرور یا فضای هاستینگ تهیه کنید، تعدادی برنامه‌نویس بشینن این جدول ها رو در پایگاه داده که انتخاب می‌کنن بسازن بعد اون منطقه که شما نیاز دارید رو بنویسن تستش کنن و اگه از اول میخواستن با منطق 5 میلیون کاربر فعال اون برنامه رو طراحی کنن تقریبا مگر اینکه پول نامحدود داشتید پروژه شکست میخورد. یعنی روحالی که بخوایم از صفر بیاریمش بالا بخش بک قضیه رو چند تا محارت مختلف رو میطلبه نگهداری دیتابیس‌ها هستش نگهداری بخشای سنگینی از کد هست، نگهداری از سرور ها هست. اگر هم استراتژی خوبی در میون نباشه ممکنه کلن یه شبه مثلا یه دیسکی یه جایی بسوزه و کل اطلاعاتتون بپره. اصلا شاید به همین خاطر هست که خیلی از هرفی هم اینطور سیرویس ها مثل فایرویس و آمازون امپلیفای رو انتخاب میکنن. گذشته از این آمازون امپلیفای یه پلن یک ساله رایگان واسه شروع هم داره و در کنارش فایر بیس اگه تعداد کاربرها و تعداد استفاده شد از یه حدی بیشتر نشه این امکان رو بهتون میده که تا ابد رایگان بمونه وقتی اینها پولی میشن هم واقعا یه هزینه ناچیزی میشه مگه اینکه اپی با صدها هزار کاربر فعال که هر کدوم هر روز یه محتوایی رو منتشر میکنن و عکس و فیلم می‌فرستن داشته باشید در اون صورت احتمالاً باز واسه اون این هزینه رو پرداخت کنید هر دو پلتفرم از وب و اندروید و آی اویس پشتیبانی میکنن. امپلیفای به صورت رسمی از ریاکت و ریاکت نیتیو و انگولار و و جیس پشتیبانی میکنه. فایر بیس از فلاتر و انگولار و ریاکت پشتیبانی میکنه به صورت رسم. امکانات جذاب دیگه هم داره فایر بیس. اونم اسمش مل کیت هست یعنی کیت یادگیری ماشین. در بخش بعدی که در مورد علم داده صحبت میکنیم دقیق بررسی بررسیش کنیم که این املکیت فایر بیس چیه و چرا به درد میخواد. دیگه اینکه از سرویس های فارسی که کارهای مشابه هم انجام میدن میشه به بکتوری اشاره کرد. حتی اسپانسر این قسمت از پادکست اسپانسر این قسمت از پادکست نیستش. ولی خب امکانات جالبی رو بدون نیاز به کدنویسی در قسمت بک بهتون میده. مثلا شما یه گیم تولید میکنید میخواین یه سری اطلاعات یوزرها رو داشته باشید آنلاین، مثلا های اسکور یوزرها قرار ذخیره بشه. خیلی سریع توی جدول مربوطه رو بسازی توی گیم یا اپتون. یه سیستم چت می‌خوای میاریم بالا به راحتی ممکنه. حتی توی حالا این کیسایی که استفاده زیاد هم دارن، نوعه بالابوردن این بخشایی رو هم خودشون آوردن و توزی خب بریم تا بخش بعدی که علم داده هست. و این بخش در مورد تاثیراتی که این ترند برنامه‌نویسی بدون کد توی یادگیری ماشین و پترکولی کلی علم داده داشته صحبت می‌کنیم. خب در این زمینه میشه به ابزارهایی مثل ماینر، Orange و Azure Machine Learning که از مایکروسافت هستش اشاره کرد که به شما اجازه میدن به صورت درگ اند دراپ یه دیتاست و روش مدل بسازید. مدل هم در یادگیری ماشین احتمالاً میدونید چی هستش دیگه مثلا ساده‌ترین حالتش اینکه یه تعداد نقطه در فضای دو داشته باشیم بخوام یه خطی رو پیدا کنیم که فاصلش از این نقطه ها کم باشه و بیان معاصبات عددی درون یابی کنیم بتونه یه تابه بشه که X رو به ایگره برسونه در عمل مدل های پیشتری ممکنه استفاده بشه که اینجا خارج از بحث ماست ولی خب باید درک مفهوم همین که یه تعدادی نقطه داریم میخوایم یه جورایی یه خط رو بچرخونیم که نمایانگر این دیتا بشه میشه مدل برگردیم به بحث و دور نشیم این ابزاره که اسمش رو بردیم به اسم رپید ماینر و اورنج و آزور ماشین لرنینگ به شما این اجازه رو میدن که داده رو که دارید رو بتونید نمودارای ازش ببینید به اصطلاح ویژوالایزش کنید بعدش هم بتونید یه مدل روش ترین کنید یعنی همین که فقط اسم این اینهاسا رو بدونید و یه کلیاتی از ماشین لرنینگ از یادگیری ماشین دهدی که چه میشه دیتا ست رو آماده کرد بدونید ردیف میشه یه خروجی گرفت. یعنی خب مثلا آیا میشه به این صورت تصاویر سی تی اسکن رو داد و مدلی زد که باش بشه سرطان رو تشخیص بده؟ یعنی خود اون سیستم هوشمند اون مدلی که لرن میشه از یادگیری ماشین بتونه تشخیص بده این عکس سی تی اسکن مال یک فرد سرطان هستش، سرطان دار هست، سرطانی است یا یه فرد معمولی؟ یا اینکه آیا بهترین نتیجه و کیفیت رو میشه به این شکل از همون دیتا که داریم گرفت؟ وازم خب منطقی نیست به این صورت. اما حد تا اگه بخویم در سطوح بالاتر و به صورت هم کارهایی رو انجام بدین، این نرم افزارها یا کتابخانه‌های دیگری هستند که بهتون کمک می‌کنن. با توجه به رشدی که این ابزارات تا به امروز داشتن برای کارهای بزرگتر همچنان نیاز هست کد بزنید تا تغییراتی در دیتاهاتون بدین. حجم پارامترها و نوع مدل رو تغییر بدید یا تحلیل خطاهای بیشتری رو انجام بدید در واقع خطاها رو بیشتر تحلیل کنید اما اگه این کتاب ها نبوده قطعاً حجم کد مورد نیاز خیلی بیشتر می بود و خطایابی تو اون حجم کد واقعا سخت می خلاصه طور بخوایم تاثیر ایده برنامه‌نویسی بدون کد رو توی یادگیری ماشین ببینیم یه سری ابزارها شدن که حجم کد رو به شدت کم کردن سرعت اجرا و سرعت توسعه رو افزایش دادن و یه سری ابزارها که تست های اولی رو بدونه، اینکه یه خط کد بزنید میتونن بگیرن این نقاشه ها رو دیدید اولی خطوط کلی و کمرنگی رو نقاشی میکشن این ابزارها ها هم مثل همون میتونن باشن. یه طرح کلی وسطتون رست میکنن ممکنه همون هم واسه شما کافی باشه بنا به کاربردتون اگه کافی نبود درداقل میتونن شما رو سری دو پله ببرن جلوتر تا بتونید ادامه ماجرا رو دنبال کنید خب قضیه ایملکیز رو که تو بخش قبلی هم بهش اشاری کردیم و توی فایر وجود داره ایدهش اینه که قراره ماشین لرننگ رو به سادگی توی پرداکشن بیاره از ابزار آماده که داره و مثال شناس های مت هستش یه سرویس که در واقع اکس رو میدید اکسی که روش مت داره و متنش رو بهتون برمیگردونه میگردونه شناس های چهره رو داره اونطور پلیسی قضیه فکر نکنید بهش که مثلا یه رو می‌خواید پیدا کنیش از چهره مثلا اینکه واخه تو عکس مثلا آدم هست یا نه فرض کنید شما مثلا یه گیمی درست کردید می‌خواید مطمئن بشید همه عکس خودشون رو آپلود میکنن کسی عکس گلو در واقع سخن بزرگان و این جور چیزها آپلود نمی‌کنه توی گیمتون بعد میتونید مثلا از این سرویس استفاده کنید که آیا عکس مثلا یه, یه صورت رو میتونه تشخیص بده یا نه و مثلا اون خیلی بالا با کیفیت خوبی که داره میاد این رو به, به صورت API این امکان رو میده که در واقع ببینید که در این اکس شامل تصویر هستش یا نه همچنین یه چی... یک امکان دیگه به اسم Landmark Recognition داره مثلا توی یه اکسی بهتون میگه که چه نمادهای معروفی اینجا وجود دارن عکس اکس برژ ایفل رو میدید میگه تگش ایفله دیگه اینکه آها یه چیز دیگه هم که به سادگی میشه استفاده کرد با این جور سرویس ها اکسپلیسیت کانتنت هی. یعنی حالا در واقع عکس های مشکل دار یعنی مثلا شما یک نرم افزاری درست کردید خیلی واساتون مهمه که تصاویری که توی نرم افزار بارگذاری میشن و در اختیار بقیه قرار می گیرن مثلا پرنوگرافی نباشه خوشونطاویز نباشه و مواردی از این قبیل خب با کمک یه سری ای پی هایی که البته این ای پی ها تو ام کیت نیست توی گوگل ای آی هستش تو بخشی از در واقع گوگل کلود هستش بهتون اجازه رو میده که به سادگی بتونید استفاده کنید و حالا در واقع اینها چی بود الترناتیو اینها بود که شما این بود که شما باید یه سری در واقع متخصص و یه سری آدم فعال توی زمینه یادگیری ماشین و حالا بر های مختلف داشته باشید و اینا در پیپر پیپرها رو بخونن یا مثلا کتابخوانهای مختلف رو استفاده کنن بعد بالا رو پرداختشان بردنش ممکنه جزیيات زیادی داشته باشه و سری تر کردنش ممکنه جزیيات زیادی داشته باشه به هر صورت خیلی هزینه میشه از دهدی بود که ممکن بود حتی به این نتیجه رسید که اوکی که من مثلا یه گزینه ریپورت میذارم تو نام فرمان و بذار رپورت کنن بذار بره بالا و رپورت کنن مرد. ولی خب گوگل کلاود و داره مثلا امکان رو بهتون میده که به سادگی بتونید ازش استفاده کنید و نیاز نیست متخصص در واقع پردازش تصویر یا مثلا یادگیری ماشین یا در واقع ML انجینیر باشید که بتونید در واقع این استفاده ها رو ببرید. خب این بخش علم داده بود. بریم و برگردیم تا به بخش فرانت برسیم. ما می‌خوایم راجع به برنامه‌نویسی بدون کد توی فرانت اند صحبت کنیم. قبلاً توی مجموعه آفیس یه نرم‌افزاری بود به اسم فرانت پیج. تا سال 2003 نرم‌افزار توی آفیس وجود داشت. این نرم‌افزار با محیط مشابه بقیه نرم‌افزارهای آفیس، مثلا همین ورد که واسه همه آشناست، به شما اجازه میداد بتونید صفحات وب رو ویرایش کنید و با کمی خوش‌بینی کل ظاهر یک وبسایت رو بسازید. یعنی مثلا شما با یک کلیک یک تصویر رو ایجاد می کردید، آدرسش رو وارد می کردید، اون همونجا کدای اچ تی ام به اون عکس رو ایجاد می کرد. یه دونه کلیک می‌کردید که مثلا این الاینمنتش بشه وسط صفحه، اون عکس می اومد وسط صفحه، دوباره یه کلیک دیگه می کردید که یه هایپر لینک، یه لینک میخوام بهش اضافه کنم، یه لینک هم در واقع میتونستید به اون عکس اضافه کنید. میشد با ساخت جداول صفحه رو گرید بندی کرد و موارد این چنین. یه چند تا مشکل فرافواستون وجود داشت یکی این که وبسایتتون استاتیک میشد های استاتیک یعنی ویب سایت هایی که قرار یک نوشته بشن و خیلی دیر به دیر تغییر کنن در نتیجه برای مثال اگه به این صورت یه سیستم وبلاگ داشته باشید به چالش جدی می‌خوردید یک دیگه از مشکلات استاندارد نبودن خروجی بود به این صورت که یه حجم بالایی کد داشتین برای شما تولید میشد و تغییر دادنش سخت بود همچنین هر چقدر قدم به سمت ترهایی یک وبسایت شیک و درست تر بر می دشتید به چالش های بیشتری می خورد. شاید حالت بهتری از این کار رو میشه امروزه توی ادیتورهای های سیستم های و سیستم های مدیریت معتوا دید. پرای اینکه یه تصویر یا جدول به معتوای صفحه اضافه کنید نیاز دید که HTML بلد باشید و در واقع اون کود های مربوط به جدول و اکس رو بنویسید. با کمی دست و پنج کردن با ظاهر گرافیکی که در اختیارتون قرار گرفته می تویید کدای HTML مورد نیاز و رو تولید کنید. بر نام نویسی فراننت هم به اندازه بکن تحت تاثیر کتابقون های رنگارنگ قرار گرفته. خیلی از این کتابگو ها به شما مژول های قدرتمند و زیبایی رو میدن که شاید اگه قرار بود از صفر نوشته بشه ساعتها زمان می بود. تا جای این قضیه که تقریبا حالت بیسیک و بدون استفاده از کتابگونا ها رو تو خودش معف کرده. عادت مزایایی که این کتاب خونه های سطح بالا میارن به قیمت پردازش بیشتر در مرورگر کاربرهای وبسایت هستش. معمولاً خیلی نباید توسط کاربر نهایی اس بشه، اما گاهی اوقات بسته به شرایط نرم ممکنه این کندی قابل تحمل نباشه. برای مثال تلگرام مسابقه گذاشته که وب اپ خودش رو بدون ریاکت که یکی از این کتابخونها هستش از صفر توسعه بدن تا بتونه سرعت بالاتری رو برای بیاره. خب این قضیه برنامه نمیسی بدون کد رو می بینیم که پترن هاش در فرانت هند هم وجود داره. در واقع بیشتر از این وارد جزیات نمیشیم تا از برس اصلیمون دور نشیم اما به سادگی میشه فهمید که همین قضیه در واقع کنتر شدن و راحت شدن و در واقع تولید سریع خروجی اینجا هم میتونه دنبال بشه. خب اینجا بخش فرانتند رو به پایان میبریم و توی بخش بعدی قراره به سه در یک بپردازیم. تا الان راجب به این سیر تغییرات توی بکند علم داده و فرانتند صحبت کردیم. توی این بخش میخوایم یه سری ابزار همه کاره رو با هم ببینیم که یه جورایی مثل اون نسکافه های سه در یک هستن. خیلی سریع بالا میان و شاید خیلی به کیفیتشون شک داشته باشن و ازشون رضایت نداشته باشن ولی ممکنه یه موقع شما یه هزینه بالاتری هم واسه یه نسکافه جای جایی بدید و از همون 3 در یک هم بدتر باشه در نتیجه باید ببینیم که اینها چه استانداردهایی رو دارن و دارن چیکار میکنن و در واقع چقدر میشه روشون حساب کرد تو این بخش میخوایم کلا راجع به این صحبت کنیم که با این ابزارها چه کارهایی میشه کرد با مثال بریم جلوتر که ببینیم چه میشه کرد و چه کار نمیشه کرد مثلا یه وبسایت خیلی ساده رو در نظر بگیرید وبسایت معرفی محصول میشه محصولات جدید رو راحت اضافه کرد ارتباط با ما داشته باشه یا مثلا یه وبسایت یک وکیلی باشه یا وبسایت یه دونه پزشک باشه که قراره مطلب رو معرفی کنه این چیزها رو اصلا قبل از اینکه به اون سولوشن ها فکر کنید بهتر به سولوشن های سی در یک فکر کنید مثلا وردپرس و جنگو دو تا سیستم مدیریت محتوا هستن به سادگی با چند تا کلیک نصب میشن به شدت ماژولار هستن ها ماژول های رایگان دارن و واسه این وبسایت معرفی مسئول و معرفی مطبع دکتر یه صبح تا ظهر کافیه که یک وبسایت رو بتونید با بیارید بالا. تموم شد و رفت. خیلی افراد رو می که برامنه بلد نیستم ولی مثلا با چند تا ویدیو یاد گرفتن چطوری می با این سیستم های مدیرت متواب و کار کنن و چیزی رو که میخواستن رو تونستن بسازن. اصلا فرض کنید برامنه هم بلد باشن. موردی نیست. وقتی میشه یه کار رو ساده انجام داد باید یه دلیلی داشته باشیم که سمتش نمیریم دیگه در کنارش سیستمایی مثل ویرگول، برادک و کاموا رو هم داریم که در واقع از سرویس شما میتونید یک در واقع سایتی یک دومین رو بهشون اتش کنید و از اون سیستم منیجمنتی که دارن استفاده کنید یه سیستم آماده با پشتیبانی در اختیار شما قرار میدن واسه خیلی از کارپورت ها هم جواب هستش اوپن کارت هم یه سیستم فروشگاهی اوپن سورس هست که فارسی هم شده و میشه باش خیلی سریع فروشگاه اینترنتی ساخت سرویس های مشابه خارجی رو بخوایم نام ببریم یکیش wix.com هستش که بهتون اجازه میده یه وبسایت شخصی رو خیلی ساده در حد درگ بسازید و تعداد زیادی سرویس مشابه یعنی در واقع می سازید که بخش ارتباط با ما داره، بخش گالری داره، های مختلفی داره مثلا یک فرض کنید عکاس اگه بخواد وبسایت بسازه خیلی شبیه وبسایت بقیه عکاس‌ها هستش دیگه احتمالاً Wix.com یه دونه تیمپلیت واسه این کار داره خیلی شیک و ترتمیز اینو در اختیارتون قرار می‌ده و از اینه پایین این وبسایت ساخته میشه از بس خیلی دور نشیم. قبل از استارت یه پروژه خیلی خوبه که رو بدونیم. اگه وبسایتی داریم تولید میکنیم که کار کارکردش چه افتاده است، به سادگی میشه توسط این سیستم ها، پازل پازلتور کل وبسایت رو ساخت. به خیلی از چیزهایی که فکر نکردید، هم اونها فکر کردند. و در نتیجه قبل از استارت از صفر قضیه، خوبه یه نگاهی به این سرویس‌های موجود بیاندازیم. ببینیم چطوری هستن و چی میخوایم که اونا ندارن با من. چقدر از اون چیزی که میخوایم و ندارن واسه این سیستمی که داریم میسازیم حیاتی هست و چقدر حاضریم باباتش هزینه کنیم. در ادامه چند تا اپ رو بررسی کنیم ببینیم چطوری میشه با آمازون، امپلیفای یا فایر بیس اینها رو ساخت. مثال اولمون اینستاگرام هستش. خب اعتمالا همه تون با اینستاگرام آشنایی دارید. اینستاگرام یه بخش هوم داره اگه غرار باشه این بخش هوم آخرین عکس‌های کسایی که دنبال می‌کنید رو نشون بده همه چیز ردیفه یعنی کاملا میشه با اون سیستما پیادش کرد مدت زمان خوبی هم اینستاگرام واقعا به همین صورت بود الان یه جوری شخصی سازی میکنه و چیزایی که در واقع های یادگیری ماشینی که ترین کرده واسهش تخمین میزنن رو بهتون نشون میده که احتمال اینکه شما عکس رو لایک کنید رو بیشتر کنه در واقع بهش میگن پرسونالیزیشن یعنی شخصی سازی سعی میکنه اون چیزی که بیشتر خوشتون میاد رو بهتون نشون بده بخش دیگه اینستاگرام بخش چتش هستش خب این هم احتمالا مشکل توی پیزهش نباشه این سیستم ها این چنین کاربورت هایی رو هم در نظر گرفتم دیگه اینستاگرام چی داره بخش سرچ که سعی میکنه مثلا با توجه به چیزایی که شما و دوستاتون لایک کردید چیزایی که احتمال اینکه لایک کنید یا واکنش بهشون نشون بدید رو بهتون نشون بده. خب اینجا واقعا به چالش میخوریم این یه محصول دبایی یادگیری ماشینه که نیاز به تحقیق و توسعه داره شاید بشه یه جور دیگه مسئله رو تعریف کرد و راحت حلش کرد یعنی یه جوری که بتونیم با چیزهایی که از املکیت داریم در واقع این مسئله رو حل کنیم یعنی که نمیخواد اونقدر پیچیده باشه فرس شما مثلا میدونید تگ هر اکس چی هستش تگ عکسایی که شخص لایک کرده هم داری اکس هایی که با اون تگ ها امروز بیشترین لایک رو گرفتن رو بهش نشون بده متوجه اسید کلا داره چه اتفاقی میفته دیگه میشه یه باز تعریفای از مسئله کرد که اون روی اون سیستم سوار بشه اما اگه دقیقاً همون رو بخواین، اول اینکه قطع مهندسانی در سطح اینستاگرام میخواید دوم اینکه خیلی کار میبره دیگه بعد جزئیات بالایی رو در نظر گرفت بعض زخیره کردن تصاویر و ویدیو هم به چالشی نمیخورین خیلی راحت مل زخیره سازی دارن این سیستم ها و توش زخیره میتونه بشه دیگه یعنی حتی تو اسکیل میلیون هم برید باز هم پیچ چالشی نداری وقت حالا اون قبضی که واسهتون میاد احتمالاً بیشتر میشه که اونم یه هزینه مدرهی تو منطقی هستش اما مثلا لایف لایف اینستاگرام چی؟ اونو میشه اصلا پیاده کرد این رو دیگه واقعا حداقل با این سیستم های موجود نمیشهندش کرد یه اینستاگرام دارید با امکانات کمتر و بدون های خب این دیدی بود که یه نگاه اولیه به اینستاگراممون بود که میتونیم کجا هاش رو بسازیم کجاهاش رو نمیتونیم بسازیم توجه کرده دیگه ما الان داریم خیلی مینیمالیستی به قضیه برخورد می و خیلی چیزها از سرویس می گیریم. اگه واقعا یک بیزنسی داشت اینستاگرام داشتیم نمیشد شاید این کارا رو انجام دادم اون از اینها خیلی بالا میشد اصلا شاید فایر بیس نمیتونست با ما سرویس رو بده یا چالش های دیگه ولی خب فرض کنید یه اپی با شباهت های بالای به اینستاگرام میخوایم بسازیم این امکانات رو میشه خیلی سریع توش در واقع پیاز سازی کرد. خب یه اپ دیگر رو هم به مثال ببینیم مثلا تیندر میشه همین API رو با اینا خب این که تعدادی کاربر باشن که عکس میفرستن و دبا میشه شو شون رو بروز کرد و و هم میتونن چت کنن که بدون مشکل هستش این که آدم ها رو بشه فاصله شون رو از هم سنجید کار رو سخت بکنه یعنی دیگه به اون سادگی نیست نیازمنده در واقع به دیتابیس مکانی هستید یه لانگ یه مختصاد رو بهش بدین و مختصاد دروبرش رو پیدا کنید این رو هم میشه به عنوان سرویس گرفت یعنی سرویسی باشه که این کارهای مختصاتی رو واسه انجام بده بله Amazon AWS GIS Solution این کار رو انجام میده خب حدقل با تعریفی که من از تیندر میدونم میشه اون رو پیاده کرد و حالا به این صورت که گفتیم به سادگی حالا بالاش آورد حالا این که من میگم این میشه پیاده کرد و بالا آورد به معنی نیست که بیزنس تیندر در خطره مثلا اینی که یکی یه بیاد اینو بالا بیاره 100% درصد بحث مارکتینگ و بحث های دیگه هم داره که حالا اینجا خارج بحث ماست بحث فنی که یه سیستم مشابهی رو بخوای بیاریم بالا حالا با حدودی دیگه به صورت تقریبی یه سیستم پیچیزی هم با هم بررستی کنیم مثلا سرچ انجین میشه بدون کد زدن یه سرچ انجین ساخت باید خیلی دقیق‌تر اینجا بشیم که کاربوردی که داریم چیه چه جور سرچ هایی رو می‌خوایم جواب بدیم واقعا قرار وب کرال بشه و کاری مثل سرچ گوگل انجام بدیم یا مثلا یه بخش وبسایت دانشگاه است که چند هزار پایان نامه رو لیست کرده و هر چند ماهه بار به روز میشه و قرار توی اونا سرچ کنیم طبیعتاً به همین سادگی که با گوگل نمیشه رقابت کرد دیگه اون مساله به حالت کلی رو که نمیشه کرد و حتی شاید نزدیک اونم که بهش واقعا نمیشه شد شایدم که حالا میشه حذفش کرد تا جمله قبلی من چه با کد چه بدون کد از به سری مهندس در سطح گوگل داری ولی خب ابزاره آزاد و متن وجود دارن مثل الاستیک سرچ که اون سرچ توی پای نام واسه وبسایت دانشگاه رو مردن ایناف یا بهتر از کافی بودن انجام میدن میشه بالا آوردشون این بالا آوردن ممکن شامل کامفی کردن و کد زدن هایی باشه ولی خب این رو باید بدونیم که این چین سیستم هایی رو اگه از صفر میخواستیم بالا بیاریم و این کار سرچ رو انجام بدیم حجم کار واقعا برای تیم تیمای کوچی تا فرسا فرصا غیر عملی میشد یعنی در عمل بخوایم تصور کنیم اتفاقی که میفتادیم اگه این سیستم مثلا الاسیک سرچ نبود دانشگاه میرفت سیستمی رو می آورد بالا که اصلا سرچ خیلی ابتدایی رو داره مثلا داره یه کوئری اس فرض کنید فقط میزنه دیگه به اون صورت از امکانات خوبی که میشه در واقع توی رتریوال استفاده کرد داره استفاده نمیکنه والا الاستیک سرچ خیلی بهتر و ترتمیزتر و یکجا تر داره همه چی امکانات رو در اختیار تیمای کوچیکم قرار می‌ده خب بریم و بیایم تا به بخش پایانی اپیزود برسیم به بخش پایانی اپیزود رسیدیم توی این اپیزود اینو بررسی کردیم که دورانداز برنامه‌نویسی بدون کد یا حداقل با کد کمتر به چه صورتی میتونه باشه این مسئله رو توی سه بخش مختلف که برنامه‌نویسی بک اند و علم داده بود بررسی کردیم چیزی که بین همه اینا مشترک بود پایین اومدن شرید حجم کد مورد نیاز در دهه اخیر بود بعد دیگه اگه عملکرد اون وبسایت یا سرویسی که قرار ارائه بشه تکراری باشه ممکنه به صفر هم برسه حجم کد اگه یکم یک پیچیدهتر بشه باز میشه این ابزارها رو به صورت پازل کنار همچید و با حداقل حجم کد یه سرویس قابل اعتماد رو ارائه کرد و در مورد کارهای خیلی پیچیدهتر یا متفاوت دیدیم که تقریبا با قدرت فعلی این ابزارها شدنی نیست اما خب همون کار خیلی پیچیده رو هم در نظر بگیریم این ابزارها مثل میتونن به ما کمک کنند که کار راحتتر جلو بره دیگه. درسته به مرور زمان هم دارم قوی میشن و در نتیجه برای بالا این پروژه و اون پروژه انگار اگه ده سال پیش مثلا به یه رستم دستان نیاز بود الان این اروم ها میگذارن که یه آدم با قدرت کمتر هم بتونه دمالا ده سال بعد بازم سطح اتوماتیک شدن کار افزایش پیدا میکنه و راحتتر تر میشه پروژه رو به سرانجام رسونه حالا شاید بگید این بعدش موجب بیکاری نمیشه بیکاری این افرادی که حالا در واقع مثل خودمون دارن برنامه نویسی میکنن این موضوع واقعا دیگه خیلی خارج از موضوع پادکست ما میشه ولی اگه بخوام غریزی داشته باشیم بهش و یه اشاره ای بکنیم معمولا اقتصاددانا تو این شرط خوشبین هستن و اینطور فکر نمیکنن در واقع وقتی هزینه تولید بیاد پایین میگن که سرعت میره بالا احتمالاً مشتری زیاد میشه نیازمندی های مشتری پیچیده‌تر میشه کلا کارای تری میشه کرد یه نکته دیگه ای را به اشاره کنیم حوااس اون باشه نتیجه نتیجهگیری غلط نشه کارای سختتر تا الان با کد خیلی زیاد و دانش خیلی زیاد انجام می کارهای کارای سختتر منظور دو پروژ های پیچیده تر هستش که تیپیکال نیستن دیگه در ممکنه کد زیاد دیگه نیاز نباشه اما همچنان به نظر میرسه که دانش زیاد از لای پایین ها نیازه ولی خب به مرور استاندارد میشه دیگه وقتی یه چیزی استاندارد بشه عمل کردن بر اساسش پیشبینی رفتارش راحت و نتیجهش میشه تولید سریعتر یه منصول باکیفیت تر خب به پایان اپیزود رسیدیم ممنون که اپیزود رو دنبال کردید رای اصلی حمایت از پادکست دومبرژن و مشابه که بهشون گوش میدید و علاقه من دید معرفی به دیگران توی های مختلف هستش توی آیتیمز و کاسپاکس اگه نظری راجع به این اپیزود یا اپیزودهای دیگه داشتید حتما بگید پنج ستاره هم بدید باعث افتخاره باعث میشه مخاطبین بیشتر بتونن محتوا رو دنبال کنن همچنین اگه نکته‌ای اس کردید توی اپیزود از قلم افتاده توی وبلاگ مطرح کنید سعی میشه بوستاپ داده بشه تا به مرور پست وبلاگ پادکست رو بتونیم غنی‌تر کنیم همراهان جان گرامیان و بزرگواران تا درودی دیگر بدرود.